در تو از طاعت من هیچ فزود، و از معصیتی که رفت نقصانی بود. بگذار و مگیر چون که معلومم شد گیرنده دیری و گذارنده زود. دستم چون منی که جام و گیرد، هی پس که او دفتر من برگیرد. تو زاهد خشکی و منم فاسقه تر آتش نشنیدم که در تر گیرد. در دهر کسی به گل ازاری نرسید، تا بر دلش از زمانه خاری نرسید، در شانه نگر کتاب ست چاخ نشد، دستش به سر نگاری نرسید. در دست همیشه آب انگورم باد، در سر حبس بوتان چونهورم باد، گویید مرا که ایزدت تو دهاد او خود بدهد من نکنم دورم باد.